در کتاب اصول کافی عربیش، جلد دوم، صفحه 128، باب زم و دنیا و زهد فیها. روایت شماره یک از امام صادق علیه صلات و من منزه هدف دنیا. کسی که تو دنیا زهد اختیار کنه، اسبت الله حل حکمه فی غلبهی. حکمت رو در قلبش ثابت می‌کنه این مهمه ممکنه انسان یه چیزایی رو یاد بگیره زود از یادش بره یه چیزایی رو به صورت حتی ایمان مستوده داریم ایمان مستوده در مقابل ایمان مستقر یادتونه دیگه روایتش رو فکر کنم خوندیم ایمان میتونه مستوده باشه یعنی مقطعی زمانی موقتی یه چیزی پیش بیاد ایمان اسلام نیست بالاتر از اسلام ایمان ولی ایمان به گونه ای که یک کمکی امتحان هات شد ایمان میپره اینو میگن ایمان مستوده به صورت ودیعه امانت رو امانت موقتی جایستی الان اگر این ساعت بنده رو امانت به شما بدم خب این بستگی داره که کی من بیام امانت رو برگردونم ولی اگر مال شما باشه فرق داره میگه حکمت رو در قلبش ثابت میکنه و کسی هم که حکمت به او دادن خیره کسیر داده شده اثبت الله الحكمه فی قلبه و انتق بها لسانه زبانش رو به این حکمت گویا میکنه و بسره او عیوب دنیا داعها و دواها چنان بیناش میکنه به سارت بهش میده که عیوب دنیا رو به گونه‌ای بفهمه درد در دنیا چیه دواشم هم چیه این شناختو پیدا میکنه و در اثر این شناخت و اخرجهو من الدنیا سالمن الی سلام خیلی حرفا و اخرجهو من الدنیا سالما الی سلام چقدر انسان ها از این دنیا سالم خارج شدن با ایمان با تقوا با مراحل عالیه قرب حضرت حق و داشتن اون درجات لیاقت لقاء رب. میگه اینا همه طبق این روایات مام صادق از چیه؟ از زهده.